اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد به نام خداوند بخشنده بخشایشگر بگو خداوند یک و یگانه است الله الصمد خداوندیست که همه نیازمندان قصد او می کنند هرگز نزاد و زاده نشد احد. و برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است